چرا نوسازی هم نتوانست خلقیات ما را متحول کند؟ به یک جهت و البته با اندکی تسامح می توان فرض کرد عقب ماندگی و توسعه نیافتگی خلقیات مردم ناشی از وضعیت پیشا مدرن جامعه بود است. در این صورت تغییرات مدرن معاصر در جامعه ایران، و پویش نوگرایی، نواندیشی و نوشدگی علال قاعده باید میتوانست چالشی مؤثر در مواجهه با این وضعیت پیشامدرن مدرن باشد و به تحول و ارتقاء خلقیات بیانجامد. تجربه مدرنیته این ظرفیت را دارد که فرایند اجتماعی شدن و حس تعلق به گروه و جامعه را ارتقا بخشد و به تربیت شهروند انتخابگر و مسئول کمک کند انسانگرایی جدید استعداد آن را دارد که عزت نفس بشر را بالا ببرد و منبع درونی بزرگی برای اخلاق فراهم آورد. آمگرائی جدید مضمونی اخلاقی دارد همانطور که خاصگرایی پیشامدرن مدرن مزمونی غیر اخلاقی داشت. ارزش های مدرن همچون کار و تولید در برابر ارزش های انتصابی مانند تکیه به منزلت های پیشین و موروسی توان آن را دارند که خلقیات را ارتقا بخشند مدارای جدید این خلقیات را پرورش می دهد که مردم افکار متفاوت و سبکهای زندگی مختلف یکدیگر را درک کنند اما چرا تغییرات بظاهر مدرن معاصر در جامعه ایران نتوانست به این تحولات چنان که باید و شاید کمک کند به تصور نویسنده شاید علت اصلی آن بود که پویش نوگرایی نواندیشی و نوشدگی بیشتر به پروژه نوسازی دولتی تحویل یافت. در واقع پروژه مدرنیزاسیونی داشتیم بدون پروسه مدرنیته. پروژه مدرنیزاسیون بیشتر دولتی بود و علاوه بر آن ضعف‌های عمده‌ای مانند ناکارآمدی، خودکامگی مخرب، فساد و تعارض در آن وجود داشت. اکنون این موضوع اندکی شهر داده می‌شود. بحث با یک فرض ساده دنبال می شود اینکه وضع پیشامدرن سبب نوعی پس افتادگی و توسعه نیافتگی در رفتار و خلقیات بوده است. خود این فرض البته محل بحث است. اما گاه محقق از یک فرض شروع می کند و بعد به بررسی بیشتر مدعیات می پردازد. اگر وضع پیشامدرن از عوامل مهم روحیات و خلقیات اجتماعی منفی مانند ضعف کار جمعی دیگر ناپذیری دشواری گفتگوهای مسالمت آمیز و مانند آن بوده است پس میتوان گفت تغییرات مدرن که در جامعه معاصر از اواخر دوره قاجار شروع شد بایستی میتوانست این معذر را تا حدی رفع و رجوع کند تغییرات مدرن چگونه میتوانست خلقیات اجتماعی ما را توسعه دهد؟ چند مثال ذکر میشود؟ یک این تغییرات می توانست فرایند اجتماعی شدن و حس تعلق به گروه و جامعه را ارتقا دهد و یک پارچگی درونزا و پویای اجتماعی ما را سامان دهد. یکی از مشکلات جامعه ما، ذره وارگی، خودمداری و بیگانگی آهاد مردم نسبت به جامعه و احوال اجتماعی و نهادمندی اجتماعی بوده و این امر سبب مسئولیت ناپذیری ما می شده است. نهادهایی مانند مدرسه و تعلیم و تربیت در وضع پیشامدرن مدرن که اجتماع پذیری ما بر احده آنها بوده است عقب مانده، متسلب و ناکارامد بودند برای مثال، به سالاری در خانواده یا ساخت نامطلوب مکتب های قدیمی را در نظر آورید اینها نمی فرزندان را به خوبی اجتماعی کنند و بخش مهمی از خلقیات ما در وضع پیشامدرن مدرن از همینجا ناشی میشد کنترل بیرونی به یک عادتواره قالب بدل می شود. اما آیا تحولات مدرن توانست تاخت خانواده را به خوبی توسعه دهد؟ آیا توانست نهادهای مدرن آموزشی و مدارس جدید و آموزش و پرورش کارآمدی ایجاد کند؟ دو، مدرنیته می توانست به تربیت شهروند انتخابگر و مسئول کمک کند و برای مثال رعیت صفتی را از ما بگیرد. تملق و تزویر از رعیت صفتی ما ناشی میشد و از فقدان فردیت و هویت فردی نشأت می گرفت. اما آیا شهروندی جدید در این سرزمین به قدر کافی توانست توسعه پیدا کند؟ 3. مدرن شدن و انسانگرایی جدید می توانست عزت نفس آهاد مردم را ارتقا دهد که خود منبع درونی بزرگ اخلاق به شمار می رود. تحقیقات نشان می دهد، احساس مفعولیت منشأ بسیاری از رضائل اخلاقی است کسی که به خود احترام نمیگذارد به هیچ کس احترام نمیگذارد کسی که دروغ میگوید و تملق میکند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکند به یک معنا مسئله عزت نفس دارد و به خود احترام نمیگذارد چهار تحولات مدرن همچنین امگرایی جدید را در مقابل خاصگرایی پیشامدرن تقویت کند خاصگرایی منشأ بسیاری از مشکلات ما بود است اگر پارتی بازی و رابطه گرایی به جای ذابطه گرایی یکی از مشکلات و روحیات جامعه ماست همه از آثار خاصگرایی های پیشامدرن است به جای آن می توانست امگرایی جدید نهادینه شود 5 تغییرات مدرن می توانست ارزش های را در برابر ارزش های انتصابی بست دهد در وضع مدرن ارزش را کار خلاق و مولد ایجاد می کند ولی در وضع پیشا مدرن ارزش از طریق سلسله مراتب و نسبت های خونی و عقیدتی بدست دست می این تحول در چه مقیاس و با چه مقدار عمق در جامعه روی داد شش می میتوانست باعث رشد مدارا شود. چرا خشونت و تعصب در جامعه زیاد بود؟ چرا ارزش‌های رقابتی کمتر در میان بود و به جای آن عمدتاً قارت رواج داشت؟ علت آن کدهای ساختاری مدرن بود که به عدم مدارا مشروعیت می‌بخشد. اینها چقدر در آن اعماق دگرگون شدند. اما تغییرات مدرن معاصر در جامعه ایران نتوانست این آثار را داشته باشد. فرضیه ای که نویسنده برای بحث بیشتر پیش می این است که پویش نوگرایی نواندیشی و نوشدگی در جامعه معاصر بیشتر به پروژه نوسازی دولتی فروکاسته شد. تقلیل مدرنیته در متن جامعه به مدرنیزاسیون آن هم از نوع آمرانه دولتی یکی از گلوگاه های اصلی مسئله سازه تاریخ معاصر بوده است. پروژه نوسازی دولتی نیز به نوبه خود ضعفهای های امده ساختاری داشت. نخست، ناکارامدی، دوم، خودکامگی، آن هم از نوع مخرب چون در برخی جوامع آسیایی اقتدارگرایی کم و بیش سازندهی وجود داشت. سوم، فساد در دولت و چهارم، تعارض واگرایانه و مخرب در ساخت سیاسی در ادامه با تفضیل بیشتری به این موضوع می پردازیم. یکم سورتی مدرن با سیرتی پیشامدرن مدرن نخبگان سیاسی جدید در دولت از پایان دوره قاجار و به طور مشخص از اصر پهلوی به تدریج تکوین یافتند از رضا شاه بیش از این که مثل شاهان قاجار ریشه های ایلیاتی داشته باشد به نحوی از متن دیوان سالاری جدید ظهور پیدا کرد اما مشکل این بود که نخبگان جدید دولت و حواشی آن ملاحظات و ترتیبات جدید را بیشتر بر بستر منافع و پیوندهای سنتی دنبال می کردند. خاندانهای سنتی در انتقال قدرت از قاجار به پهلوی همچنان در بخش زیرین ساختارهای ایرانی ماندند و به وجود و آثار و منافع و علائق خود ادامه دادند. نخبگان جدید دولت و هواشی آن نمی توانستند خاطرات ایلی روستایی خود را رها کنند. در شهر و به طور عمده در پایتخت بودند و مفاهیم نورا مطرح می کردند. اما همچنان در پشت این مفاهیم پس زمینه ایلی و سنتی پنهان بود. آمیزهای بسیار سوست به وجود آمد که یک طرف آن خاطرات و پسزمینه های الگوهای رفتاری ایلی و سنتی در ساختهای زیرین بود و طرف دیگرش مدعیات، ملفوزات و محفوظات مدرن که بیشتر حالت ترجمعی و روز داشت. این فرایند به نوعی بیهنجاری و ضعف هنجاری در جامعه در حال گذار ایران دامن زد که منشاع بسیاری از روحیات و خلق و خوهای اجتماعی نامطلوب، محسوب می شود این مشکل به نخبگان اختصاص نداشت در مقیاس اجتماعی نیز برخی کلمات مدرن رد و بدل می شد اما نگرش ها و ارزش های واقعی همچنان پیش مدرن بود زیرا مردم به فرمان روایان خود بیش از پدرانشان شبیهند دوم، دعوی آزادی و نه الگوی زیست آزاد منشانه در دوره پهلوی اول برای نخستین بار شاهد شکلگیری بسیار اولیه ی طبقه متوسط جدید شامل کارمندان، تحصیل کردگان، مدیران، ها، مشاغل آزاد فکری و تخصصی همچون حقوقدانان، پزشکان و مهندسان بودیم. انتظار میرفت این طبقه، عاملان و حاملان عرضش های رفتاری توسعه یافته مثل مشارکت اجتماعی تفکر انتقادی، آزادی مساوات، ادالتخواهی، خواهی،, ادالت خواهی، تساهل و گفتگو باشد. نقش طبقه متوسط در تحولات اجتماعی غیرقابل قابل انکار است. سبک زندگی آن اساساً متفاوت است. این طبقه دیدگاه های زیباشناختی دارد. لذت برای طبقه متوسط فراتر از لذت مادی و روزمره است. طبقه متوسط اوقات فراغت خود را با مطلوبیت‌های بالاتری می‌گذراند خلاقیت نمادین از چیزهایی است که این طبقه دارد همه اینها می‌تواند سطح رفتاری جامعه و انتظارات نیازها و نگرش‌ها را در فرهنگ عمومی ارتقا دهد اما در ایران این طبقه در حدی نبود که به صورت مستقل پایگاه تحولات اجتماعی و فرهنگی مدرن شود فقط گاه به طور مشروط و اقتضایی با تحولات و تغییرات همراهی می کرد. سیاست برای طبقه متوسط جدید بیشتر دعوی آزادی بود، نه طلب و تمنای عمیق و درونی برای زیستنی آزاد منشانه. وقتی می گفتند شاه نباشد، در واقع فقط می خواستند آنچه را مانعی سر راه آزادی می دانستند، از میان بردارند، اما چه بسا آزادی را هنوز برای زیستن، انتخاب نکرده بودند زیست آزاد منشانه مستلزم آن است که عرضش مانند گفتگوی جمعی کار جمعی نظم درونزا خود انزباتی و هنجارگرایی خود تنظیمی آزادی خواهی با پاسخگویی و مسئولیت پذیری و غیره در اعماق ذهنها و جانها جاری شود استبداد همزاد جامعه ایرانی است. استبداد و خودکامگی تأثیر ویرانگری بر روحیات و خلق خوی ایرانیان گذاشته است. پشت این استبداد یک هستی و ساخت اجتماعی وجود دارد. یک بافت و زمینه اجتماعی که این استبداد را مرتب باز تولید می کند. سوم، طبقه متوسط دولت ساخته و آشفتگی های هنجاری آن. موضوع دیگر رشد طبقه متوسط جدید در دستگاه دولت بود. دولتی که خود بر درآمدهای مستقل از جامعه به طور عمده نفت اتقا داشت. یکی از مختصات دولت در ایران رانتی بودن آن و داشتن درآمدهای مستقل از جامعه است. بیشتر لایه های طبقه متوسط جدید نیز، حقوق بگیر دولت بودند طبقه ای دولت ساخته و حاصل پروژه نوسازی دولت طبقه ای که باید ارزش های کار و تولید را اشاعه دهد خود حقوق بگیر دولت است دولتی که در آن قرار نیست کاری مولد و خلاق صورت بگیرد و عمل انتقادی ارزش و اصالت ندارد معمولا میگویند ارتش آموزش و پرورش و دیوان سالاری سه نهادی هستند که طبقه متوسط را در ایران سامان دادند. همین سه نهاد خود از مروجان اصلی شاه پرستی بودند و ارزشهای سنتی کاملا توسعه نیافته را با رنگ و لعاب مدرن دنبال می کردند. این طبقه وابستگی زیادی به قدرت سیاسی پیدا کرد و از طریق مشاغل دولتی و پیشینه خانوادگی و منابع حقوق بگیری همچنان کم و بیش پیوندهای آشکار و پنهان با ساخت سنتی ریشه دار ایلیاتی و زمینداری داشت و فرهنگ و اندیشه سنتی روستایی بر آن سایه میانداخت. طبقه متوسط جدید از پدرسالاری، خاندان و بروکراسی دولت و اقتصاد دولتی چندان مستقل نبود. ساخت پدرسالاری در عمق الگوهای رفتاری آن ریشه دوانده بود. این امر سبب میشد افکار واقعی و ویژه رفتارها و عملکرد نخبگان جدید به نحوی باستابی با از منافع و علایق همان پیشینه سنت پدر سیاسی باشد و این خود منشعه بسیاری از آشفتگی های هنجاری و رفتاری بود. هنجارهایی که آشفته بودند. ادعای آزادی و روحیه خودمهوری در هم آمیخته بود. چهارم سیطره امر سیاسی بر دیگر امور زندگی یکی از مشکلات رفتاری ما از چیزی ناشی میشد که خود گرهی از شبکه‌ی درهمپیچیده مشکلات ساختی و نهادی جامعه بود. ماکس وبر، جیمز بیل و دیگران درباره جوامع خاورمیانه پژوهش کردند. آنها معتقدند این جوامع یک ویژگی دارند و آن این که کل زندگی بیش از اینکه تحت تأثیر خوردن نظام اقتصادی باشد، تحت تأثیر خورد نظام سیاسی آن هم به شکل نظام مسلط و فسادپذیر سیاسی است یعنی جهت تاثیرگذاری در ایران در درجه اول از طبقه حاکمه به طبقات اجتماعی و اقتصادی بوده است طبقه حاکمی که به شدت همکاره و مستعد انواع ندانمکاری و فساد بود و طبقات اجتماعی که ضعیف بودند چرا امر سیاسی در ایران مهم است و چرا به نحو متغیری مستقل بوده است؟ به نظر میرسد یک علت آن است که خورد نظام های دیگر ضعیف بودند. در نتیجه، تأثیر طبقات اجتماعی بر طبقه حاکمه تنها در حد بخشی از بازخوردهای فکری و رفتاری و منافعی بود. تأثیری از نوع درجه دوم و واکنشی، تأثیر اصلی از سمت طبقه حاکمه بود. با وجود اینکه طی دوره پهلوی شاهد فرایند حذف طبقات سنتی مانند شاهزادگان و زمینداران و رشد طبقات بورژوازی کومبرادور، متوسط و کارگری جدید بودیم، اینها همه درون دولت و یا خود دولت بودند و ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی عمیق نداشتند. اولی یعنی کومبرادور کاملا درون دولت و خود دولت بود. دومی و سومی نیز به طور عمده تحت سیطره دولت بودند. این امر به بازتولید مناسبات استبدادی، کیش شخصیت و ارزش‌های های پاتریمونیال و حامی پروری انجامید که خود منشأ روحیات و خلق و خوهای اجتماعی نامطلوب در ایران بود. پنجم ضعف گروه های رسمی انجامنی گروه های اجتماعی واحد کننده ای از ساخت جامعه هستند و رفتار و کنش مردم و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تحرکات را شکل می دهند. گروه ها به رسمی و غیر رسمی بندی می شوند. گروه های رسمی معمولا بزرگ، ثبت شده، حقوقی و با اعضای مشخص هستند و در دو شکل انجمنی و نهادی وجود دارند. نمونه ای از گروه های رسمی از نوع انجمنی، احزاب و اتحادی های سنفی و انجمنهای مشخص مذهبی و قومی هستند و نمونه از گروه های رسمی از نوع نهادی، سازمان های محلی، دولتی و نظامی هستند. گروه های غیررسمی معمولا کوچک، بیقاعده، عاطفی و اقتضایی هستند. در ایران گروه های رسمی انجمنی به صورت چندان نیرومندی وجود نداشتند. احزاب نیز بیش از اینکه ماهیت انجامنی داشته باشند، اغلب در حاشیه دولت بودند و جنبه نهادی پیدا می‌کردند. این وضع سبب می‌شد گروه‌های رسمی انجامنی چندان قوی نباشند و حتی کم و بیش ماهیت نیمه غیررسمی، اقْتزایی، شخصی و ابزاری داشته باشند. در سطح گروه‌های رسمی نهادی نیز به علت سیطره تمرکزگرایی سیاسی در کشور اجتماعات درون‌زای محلی به صورت شوراها، مجالس رسمی و اجتماعات رسمی محلی به ندرت شکل می گرفت. به جای آن، شاهد فعال شدن گروه های رسمی نهادی از سوی نظامیان در عرصه های مختلف کشور بودیم. ضعف گروه های رسمی از نوع انجمنی از یک سو سبب سیطره دولت بر جامعه شد که آثار زیانباری بر خلقیات مردم، مانند قیمومت‌گرایی، سفتی، عادت به کنترل بیرونی، تملق، تلون، ضعف احساس مسئولیت و مانند آن داشت و از سوی دیگر به جولاندهی گروههای غیررسمی در این سرزمین انجامید که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. ششم. قلبه گروه گروههای غیررسمی و آثار آن بر فرهنگ و رفتار ایرانی وجود گروه های رسمی از آن نوع که در اینجا از آن بحث شد منشهع بیقاعدگی فقدان شفافیت پیش بینی ناپذیری دستیث چینی بیاعتمادی و دروغ و نیرنگ در اخلاق اجتماعی بود گروهها و شبکه غیررسمی ایران در ادوار قبلی بیشتر در زمینه ایدیاتی و مبتنی بر خویشاوندی تعصب گروهی جنگجویی و غارت شکل می گرفت. در دوران معاصر نیز همین روند چه در شکل‌های سنت سیاسی روسوفیل و انگلوفیل و جزئان و چه در اشکال ای و مذهبی از اصلی ترین اوامل تعین کننده در جامعه ایران بود. این گروه‌ها یا در برابر تغییرات مدرن نهادی مقاومت نامنظم بیقاعده و مرموزی داشتند و یا با مدرن سازی همراهی اقتضایی و چندگانه داشتند. گروه ها و شبکه‌های غیر رسمی نوعی آشفتگی طبقاتی به بار آوردند و کسانی وارد طبقات متوسط و بالا شدند که سیر لازم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از نوع طبیعی و تدریجی را طی نکرده بودند و تنها از طریق فرصتهای نامنظم و بی‌قاعده ورود به کلوپ‌ها، دوره‌ها و محافل، حتی با وجود فقدان پیشینه‌های خانوادگی و اصالت طبقاتی و بر اثر رابطه به جایگاه های مهمی دست یافتند و در نتیجه نقش و رفتارها و اندیشه های مشوشتری داشتند نتیجه گیری باراسترین ویژگی تحرکات سیاسی در ایران دوره پهلوی اول همچنان دست به دست شدن قدرت میان نخبگان بود که با استفاده از های تودهوار و از طریق برقراری روابط در حوزه گروه‌های نفوذ غیررسمی در داخل و خارج دنبال میشد. در این دوره به جای نفوذ ایلیاتی در تاریخ هزار ساله دولت‌های ایلی از غزنویان تا قاجار خاندان و گروه های غیررسمی نشستند. عوامل نفوز سنتی داخلی از طریق بزرگان دربار، خانواده های متنفذ، ایلات و اشایر و کارمندان عالی رتبه دولتی در قوه مجریه و مقننه و در میان نظامیان بود و عوامل نفوذ خارجی در معادلات و منافع دول خارجی ریشه داشت. این حوزه های نفوذ از داخل و خارج محیطی پر تعارز غیر شفاف بیقاعده و غیر رقابتی بر بستر گروه‌های غیررسمی موسوف پدید آورد که در آن اصل بر جنگ مرموز پنهانی همه علیه همه در یک شرایط تنازع بقای بیقاعده و نامنظمی از نفوذ و غلبه و قارت بود و نظمی قابل پیشبینی میان منافع فردی و گروهی و جمعی وجود نداشت به این ترتیب، به رقم زواهر نوسازی دولتی در این دوره، سایه یک فراساخت بر جامعه ایران همچنان مستولی بود. در چنین وضعی، شرایط بازی مناسبی برای ساکنان سرزمین به وجود نمی آمد. میدان بازی بسیار بیقاعده بود. از جمله در آن میان منافع فردی و عمومی همگرایی منظمی وجود نداشت و این از مهمترین عوامل مؤثر در بسیاری از مشکلات خلقیات اجتماعی بود رابطه گرائی، خاص گرایی، دوگانگی میان قول و فعل و نظر و عمل رفتارهای فرصت طلبانه، فقدان اعتماد، گرایی و ارزشهای انتصابی به جای ارزشهای اقتصابی خودمداری و عدم دلبستگی به ارزشهای عمومی مثل خدمت به مردم و فداکاری نمونه ای از این پیامدهای رفتاری بود به ای که سخن محمود حسابی تداعی می شود حسب نقل گویا یک دانشجوی نروژی در دوره دکترا از وی پرسیده شما از جهان سوم میایید جهان سوم کجاست حسابی میگوید آن روز پاسخی دادم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا کردم جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکت خود را آباد کند خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه خود را آباد کند باید در تخریب مملکتش بکوشد